تربیت گرگ روزی بود و روزگاری بود یک مرد پارسا و نیک سیرت بود که بعد از رسیدن به کارهای روزانه تمام اوقات خود را صرف نصیحت دیگران می کرد و همیشه با خود می گفت چون من طمعی از کسی ندارم پند من در همه کس اثر می کند هم درست بود زیرا اگر در نصیحت هیچ گونه و طمعی نباشد و شنونده هم قابل هدایت باشد اثر بخش می شود پارسای آبد که همیشه کارش نصیحت بود روزی از صحرایی میگذشت و یک گرگ گرسنه را دید که دارد تند می رود. آبد از چشمهای آتشبار گرگ و از تند رفتنش حس کرد که گویا به قصد آزار و عذیت بیگناهی می روید. این بود که آبد از روی مهربانی و نیکخواهی خود گرگ را صدا زد و گفت ای گرگ می خواهم به تو یادآوری کنم که خداوند همیشه کارهای ما را می بیند و میداند. و می خواهم به تو نصیحت کنم که مواظب به رفتار و کردار خود باشی و هرگز به افراد ناتوان و ضعیف، آزار نرسانی و دنبال گوسفندان بیگناه نیفتی و بدانی که مردم آزاری عاقبت خوشی ندارد و ظالم سرانجام به بلاهای سخت گرفتار می شود من این را از قول خودم نمی گویم بلکه همه پیغمبرها گفتند و مردم دنیا تجربه کردند امیدوارم اگر تا کنون هم به کسی بدی کرده ای توبه کنی و بعد از این به هیچ کس آزار نرسانی گرگ که برای رفتن عجله داشت سخن عابد را قطع کرد و جواب داد آقای عابد خواهش میکنم فرمایش های خودتان را مختصر کنید چرا که من خیلی عجله دارم و کار خیلی خیلی واجبی دارم که نمیتوانم زیاد معطل شوم و الا همیشه برای شنیدن نصیحت شما حاضرم و شروع کرد به دور شدن عابد گفت هنوز حرف من تمام نشده مگر چه کاری داری که اینقدر واجب است؟ گرگ گفت در این نزدیکی یک گله گوسفند دارد میچرد و میترسم اگر دیر برسم گله را ببرند و فرصت گوسفند گرفتن از دستم برود ولی برای نصیحت باز هم وقت پیدا میکنم و خدمت میرسم این را گفت و پا به دویدن گذاشت آبد قدری ایستاد و با خود گفت مرا ببین که میخواستم با نصیحت این ناپاک را از مردم آزاری توبه بدهم یادم رفته بود که گرگ را با ضرب چوب و ترس از مجازات باید توبه داد زیرا توبه گرگ مرگ است Bye.